کتاب افسانه های ایرانی به نویسندگی خانوم فرزان فرزاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان. داستان های سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده آرزو مقدم داستان شمشیر تقدیر در روزگار قدیم پادشاهی بود که سرزمینی بزرگ زیر فرمانش بود از مال و ثروت دنیا چیز کم و کس نداشت و همه چیز به کام شیرین بود اما از اونجایی که زیر این آسمان کبود هیچ کس بی غم و قصه نیست این پادشاه هم دردی داشت که روز و شب آزارش میداد و تنها دردش این بود که فرزند نداشت تا اینکه بعد از سالها صبر و انتظار از یکی از کنیزانش صاحب پسری شد به نام شهریار شهریار که تنها فرزندش بود چشم و چراغ قصد پادشاه شده بود و در ناز و نعمت بزرگ میشد. و همه مراقبش بودن که مبادا یه مو از سرش کم بشه پادشاه که دیگه گرفتاری و مشکلی در این جهان پهناور نداشت خوش و خورم در قصف با شکوه زندگی میکرد. وزیر دانایی داشت که مملکت رو اداره میکرد و پادشاه خیالش از هر جهت راحت بود و وقتش رو بیشتر با شکار و تفری میگذرند و همه میگفتند که اون خوشبخت ترین پادشاه روی زمینه اما این پادشاه یه شب خوابی دید که قصر خوشبختیش در هم پاشیده اون شب پادشاه در خواب پیری رو دید با صورت نورانی که بهش میگفت وقتی پسرت هفت ساله شد شیر بهش حمله میکنه و اون رو میکشه اما، اگه پسر از حمله شیر جان سالم به در برد و زندمون در سیزده سالگی تو رو میکشه. پیری که صورت نورانی داشت، دیگه چیزی نگفت و کاغذی به دست پادشاه داد و غیب شد. پادشاه، ناراحت و نگران از خواب پرید و، دید که کاغذی در دستشه که روی اون همون مطلبی رو نوشته بود که پیر نورانی در خواب بهش گفته بود پادشاه پریشان آشفته یه نفر رو دنبال وزیر فرستاد وزیر دانا با عجله نزد پادشاه اومد و اون رو در این حال دید و علت رو ازش پرسید پادشاه کاغذ رو به دستش داد و داستان خوابش رو از اول تا آخر برای وزیر توضیح داد وزیر گفت در این کاغذ همه چیز نوشته شده و با این حساب نباید در گفته های اون پیر نورانی شک و تردید داشت و تقدیر اینه که اون گفته و کاری نمیشه کرد پادشاه خشمین شد و گفت اما من تقدیر و تغییر میدم و کاری میکنم که این اتفاقا پیش نیاد. وزیر گفت اگه تقدیر رو تغییر دادید به شما حق میدم که به جلات فرمان بدید گردن من رو بزنه. پادشاه گفت من این کار رو انجام میدم. و اما بشنوید از اون پادشاه خوشبخت که بعد از اون رویای شبانه روحیش رو از دست داده بود و دستور داد که شهریا رو با مادرش در یک قار حبس کنند و در اون قار رو با تخت سنگ بزرگی ببندن و هر روز برای اونها غذای ببرن که از گرسنگی تلف نشن پادشاه دیگه خیالش راحت شده بود و یقین داشت که خطر رفت شده و جاده تقدیر تغییر کرده. و هر بار که وزیر رو میدید بهش نیشخندی میزد و میگفت خودتو آماده کن که چند سال بعد باید تو رو تحویل جلاد بدم وزیر چیزی نمیگفت و منتظر حوادث آینده بود و اما اون مادر و فرزن در نهایت سختی در قار زندگی میکردن و هیچ راهی برای فرار نداشتند. در این مدت پادشاه هفته یک بار به دیدن شهریار و مادرش میرفت و هرچه اون زن اصرار میکرد تا اونها رو آزاد بذاره و بخوان آزادانه زندگی کنن فایده نداشت و به این ترتیب هفتهها و ماهها سالها گذشت و شهریار هفت ساله شد در همین موقع که روزی از روزها شیر گرسنهای از اون نزدیکی رد میشد بوی آدمی زاد به شامه تیزش رسید و با یه حمله تخت سنگ رو از دهانه قار به گوشه پرتاب کرد و وارد قار شد و اون زن رو در یک چشم به هم زدن کشت و خورد و شهریار هفت ساله رو که گریه میکرد و فریاد میکشید به دندون گرفت و از قار بیرون برد و به گوشه انداخت از غذا یاروخت یکی از نزدیکان شاه که به شکار اومده بود گذرش به اون حدود افتاد و طفل رو در میان خاکو خون دید و چشمش به شیر افتاد که بی بیاعتنا از اونجا دور میشد و یاروخت طفل رو بغل کرد و پیراهنش رو درآورد و زخمهاش و شستشو داد و در این حال جای دندون شیر رو در پهلوی اون دید. طفل همچنان گریه می کرد و یاربخت اون رو با خودش به خونه برد و بدون اینکه داستان رو به کسی بگه ازش مانند فرزند خودش پرستاری و نگهداری کرد و برای تعلیم و تربیتش بهترین معلم ها رو به خدمت گرفت. و اما اصر آن روز که این اتفاق عجیب پیش اومده بود پادشاه برای دیدن شهریار و مادرش به قار رفت و در اونجا از زندانیان خودش اثری ندید سوار بر اسب در این طرف و آن طرف گشتی زد و رد و پایی از اونها پیدا نکرد و به این نتیجه رسید که یه نفر به این راست پی برد و شهریار و مادرش رو از اونجا بیرون آورده و به جای دور درستی برده و چون نمیخواست ادده بیشتری از ماجر و سردر بیارن به هیچ کس چیزی نگفت و تنها کسی که از جزئیات قضایی خبردار بود وزیر داناش بود که او هم حاضر نبود کلمهای به کسی بگه و هر بار که پادشاه بهش میگفت دیدی که پسر هفت ساله من با مادرش از غار فرار کرد و از حمله شیر خبری نبوده چیزی نمیگفت و از طرف دیگه شهریار در خانه یاربخت بزرگ میشد و یاربخت که نامش رو نمیدونست که اون جهانگیر نام داره و از طرف دیگه شهریار در خانه یاروخت و زیر نظر بهترین معلم ها تربیت میشد و تعلیم می گرفت. مهارتش در سواری و تیراندازی همه رو به تحسین وامی داشت. در شمشیر شمشیربازی کسی حریفش نمیشد و یاروخت گاهی اون رو به دربار میبرد. و پادشاه که گمان میکرد نامش جهانگیر است و فرزند یاربخت حتی یک لحظه شک نمی برد که جهانگیر همان شهریار فرزند اوست و باز هفتهها و ماهها و سالها گذشت و جهانگیر که همان شهریار بود سیزده ساله شد در تمام این سالها پادشاه یه اده رو به کشورهای دور و نزدیک فرستاد بلکه از شهریار و مادرش خبری بهش بدن اما به جایی نرسید و کم کم به این فکر افتاد که اونها بعد از فرار در گوشه سربنینس شدن حال اینکه شهریار در چند قدمیش بود و گاهی اون رو همراه یاربخت میدید حسرت میخورد و آرزو میکرد که ای کاش فرزندی باهوش و باهنر مثل اون داشت و حتی انقدر مجذوب این نوجوان سیزده ساله شده بود که اون رو صلاحدار مخصوص خودش کرده بود و هر وقت شکارگاه یا به میدان جنگ میرفت اون رو همراه خودش میبرد در همین روزها که شهریار به سیزده سالگی رسیده بود پادشاه با یکی از کشورهای همسایه درگیر جنگ شد و در این جنگ لشکریان پادشاه به سختی شکست خوردند و پادشاه با تمام نیرو میجنگید و در پیشاپیش لشکریان خود شمشیر میزد. شهریار هم که در میان یک دسته سربازان دشمن گیر افتاده بود با شمشیر از خود دفاع میکرد و سعی داشت حلقه محاصره را بشکنه و در این گیرو دار وصل طوری بود که شهریار بدون اینکه به اطراف خودش نگاه کنه هر که در مقابلش میدید با شمشیر به او حمله ور میشد و در یکی از این حملهها تصادفا پادشاه در مقابلش قرار گرفته شد و شهریار با شمشیر چنان زخم هولناکی بهش زد که پادشاه تاب نیاورد و به زمین افتاد و در همین وقت وزیر و یکی از فرماندهان نظامی با سپاهی از سربازان تازه نفس از راه رسیدند و به دشمن حمله ور شدند و اونها رو شکست دادند و پادشاه که زخمی شده بود و بر زمین افتاده بود به اردوگاه بردن چند ساعت بعد پادشاه حالش کمی جا و وزیر دانا رو به بالینش خواست و دستور داد که جهانگیر رو که همون شهریار بود زندانی کنه وزیر به پادشاه گفت من از سربازانی که دور بر شما بودن پرسیدم و یقین دارم که این پسر گناهی نداشته و تصادفاً شما رو به جای دشمن گرفت و به شما حمله ور شده. پادشاه گفت: حتما به یاد داری که ما 13 سال پیش چه قراری با هم گذاشتیم؟ وزیر گفت: بله قربان. قرارمان این بود که اگه شهریار در هفت سالگی از حمله شیر نجات پیدا کرد، در 13 سالگی پادشاه را خواهد کشت. و اگر چنین اتفاقی پیش نیامد شما توانستید حکم تقدیر را تغییر دهید من خودم را به جلاد تسلیم خواهم کرد پادشاه گفت و حالا می‌بینی که من حکم تقدیر را تغییر دادم و باید تو را به دست جلاد بسپارم وزیر گفت پادشاه شما اطمینان دارید که حکم تقدیر را تغییر داده اید؟ پادشاه گفت تردیدی ندارم که موفق شدم چون شهریار با مادرش در هفت سالگی از قار سیاه فرار کردند و ظاهران در گوشه سربنیز شدند و شیر هم خودش رو در اون موقع در هیچ کجا نشون نداد و این من به دست جهانگیر فرزند یاربخت تصادفا زخمی شدم و زنده موندم و نه به دست شهریار که هیچکس کس ازش خبر نداره وزیر گفت پادشاهها متاسفانه باید بگویم حقیقت غیر از اینه که در ظاهر میبینید شما چطور متوجه نشدید که جهانگیر کسی نیست جز شهریار که در هفت سالگیش شیر وارد قار سیاه شد و مادرش را کشت و خورد و شهریار رو به دندون گرفت و از قار بیرون آورد و روی خاک انداخت و رفت و یاربخت که تصادفان به اونجا رسیده بود طفل رو به خونه برد و تربیت کرد پادشاه مبهوت و خیره شده بود گمان می کرد. که وزیر برای نجات دادن جان خودش این داستانها را سرهم کرده اما وزیر یک نفر رو فرستاد و یاربخت و شهریار رو به بالین پادشاه آورد وزیر به اون نوجوان سیزده ساله گفت پادشاه میخواد بدونه که پدر تو کیست شهریار گفت من نمیدونم پدرم کیه در کودکی با مادرم در یک قار زندگی می کردیم مادرم به من گفت که پدرت پادشاهه ما در قار بودیم تا اینکه یک شیر وارد قار شد مادرم رو کشت و خورد. و من رو در میان دندانهاش گرفت و از قار بیرون برد و روی خاک انداخت و رفت یاربخت که به شکار اومده بود من رو به خونه برد و تربیت کرد پادشاه از یاربخت قضایه رو پرسید و اون به تفصیل توضیح داد که وقتی طفل رو نزدیک دهانه قار پیدا کرده جای دندانهای شیر رو در پهلوی اون دید و با این ترتیب دیگه جای شک باقی نماند و پادشاه شهریار رو در آغوش گرفت و بوسه ای بر صورتش زد و چند روز بعد اون رو به جای خود بر تخت پادشاهی نشوند و پادشاه در اثر زخم هولناکی که برداشته بود چند هفته بعد جان سپرد از داستان شمشیر تقدیر این نتیجه گیری رو دارم که ما با توجه به اعمال و رفتارهامون هستش که میتونیم برای خودمون تقدیر خوبی رو رقم بزنیم اگر ما اعمال و رفتار خوبی داشته باشیم میتونیم تقدیر و سرنوشت خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم و اما اگر اعمال و رفتارهای منفی در زندگیمون داشته باشیم، در نتیجه به سرنوشت بدی دوچار خواهیم شد. خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای یکی دیگر از داستانهای افسانهایی همراه من بودید. سفر به دنیای پر رمز و راز ها هایی از غول ها و کوطول ها ماجره از جادوگرها سفر به سرزمین جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا،